پسل یازده هشت سال پیش از آن وقتی من و سیدنی بچه بودیم و در خامه روی تپه زندگی میکردیم توجهی به کارهای روزانی خانه نداشتیم حالا که بزرگ شده بودیم ناگهان فهمیدیم که در خانه هم سازمانی که زندگی میکنیم موجودهای مزاحم هستیم پدرم روش زندگی خانه را از زمانی که ساخته بود خود به راه برده بود و تا زمانی که مادرم به عنوان عروس به این خانه آمد، این جریان زندگی روزانه به آرامی ادامه داشت. مادرم هم مانند ما مزاهم بود، زیرا گرچه ظاهراً خانم خانه بود، اما در حقیقت در اداره خانه کوچکترین نظری نداشت. او جوان و بی را بود و هیچ هیچگونه تصوری راجع به این که چگونه جریان روزانه خانه را متوقف کند، و روش تازهی به جای آن بنشاند نداشت. این کاری بود که بعدن پولت گدارد کرد. مادرم فقط می‌توانست کور کورانه آنچه را به نظرش غیر عادلانه می ترد کند. اما علا رقب اعتراضهای او با وجود سرکشی نامیدانی او زندگی در خانه طبق عادت جاری می خوزشت. به نظر من تنها چیزی که در دوران طوفانی از دواجانها و همچنان پس از به هم خوردن ازدواج و جداییشان پایدار ماند، همین روش زندگی در خانه بود. در دوران جنجال پس از طلاق و در دوره تجرد پدرم، این روش زندگی روزانه مشکل زندگی خانوادگی طبقه متوسط انگلیسی، منظم و بدون تغییر باقی ماند. در تمام نوشته های فراوانی که در لذت پرستی ادعایی و نقض مقررات اخلاقی پدرم منتشر شده است، تصور نمی یکی از متهم اشاره به تمایل مفرت و گاهی از اوقات مزهی پدرم به خانه و خانواده علاقه او به نظم امور خانه کرده باشد. پدرم دوستدار آنگونه زندگی است که تصادف و حادثه غیر منتظر آن را مختل نکند، چورنگ حوادثی بیش از آنکه مطبوعه طبع او باشد او را می دارد. او در مواقع شادتر و آسوده‌تر بود که وقتی صبح از خواب می‌خواست بداند که در تمام روز حتی چهار بعد از ظهر چه باید بکند وقتی کار نمیکرد معمولاً ساعت یازده صبح یا حتی یکی که بعد از ظهر از خواب برمیخواست. می‌خواست زیر شب‌ها تا دیر وقت بیدار می‌ماند او تا ساعت چهار بعد از ظهر در اتاق خود می‌خواند و می‌نوشت مگر آنکه یکی دو ساعت از روز با دوستانش تنیس بازی میکرد. اگر دوستی دیدم دست نبود خودش به تنهایی زیر توپ میزد. بعد از تنیس فوری به استخر میرفت و یا حمام دوش یا حمام بخار میگرفت. بعد لباس میپوشید و برای غذا خوردن یا در خانه یا در بیرون آماده میشد. غذای او در خانه همواره ساده و کمتر متنوع بود. غذاهایش به طور عمده غذاهای انگلیسی بود. هرگز به سوزهای قلیز علاقه ای نداشت. غذای اصلی همیشه گوشت بریان، جوجه بریان، بره بریان با سبزی و نخود و سیب زمینی پخته بود. کمتر در صورت قضا دخالت می کرد و بیشتر تعین آن را به عهده خدمه خانه میگذاشت و آنها هم سلیقه او را می دانستند. اگر بیرون میرفت معمولاً در رستوران دوستش، هنری برگمان در هالیوود غذا می‌خورد. اگر شب را در خانه بود، چیزی می‌خاند یا می‌نوشت. قبل از ازدواج با پولت، کمتر سرگرمی روزانه برای خود می می‌کرد. هر روز یک شنبه، ساعت چهار بعد از ظهر چای و کیک و مربا می‌خورد. چای و کیک که مظهر آرامش و امنیت انگلیسی است، تا حدودی برای پدرم مثل یک رسم مذهبی شده بود در روزهای یک شنبهی که با او بودیم با حالتی مذهبی به ما اطلاع میداد. بچهها، ساعت چهار بعد از ظهر است موقعی چای و کیک است در انگلیس در همین ساعت چای و کیک میخورند. نقل برنامه روزانه پدرم در مواقعی که فیلمی در دست تهیه نبود خیلی جدی و باوقار به نظر می آید اما زندگی واقعی چانی نبود جدی بود و وقار فقط ظاهر غذایه بود، مثل برق و جلایی که در های کتاب آلیس در سرزمین اجایب به چشمی خورد. در واقع، یک نوع محیطی شبیه محیط آلیس در سرزمین اجایب سرپای خانه را فرا گرفته بود و این به علت تمایل پدرم بود که هم میخواست کارهای خانه در حد کمال انجام گیرد و هم از تمام دقایق وقت برای کار استفاده شود. ممکن نبود پدرم برای اجرای آرزویش در مورد نظم امور خانه که تقریبا غیر ممکن بود مستخدمانی به خوبی سه نفر ژاپنی ریز نقش گیر او برای نگهداری و رسیدگی به باغ زمین های دورخانه باغبان مکزیکی استخدام کرده بود. من گمان نمی کنم هیچ مستخدمی مانند این جاپانی ها بوده باشد. چون این سه نفر گویی همیشه یک نوع ارتباط الهام‌آمیز با او داشتند و بدون اینکه چیزی بگوید، آرزو و تمایل او را میفهمیدند. در واقع بین پدرم و تمام نژاد ژاپنی ارتباطی موجود است. ها پانتومیم او را میفهمند و دوست دارند زیرا این طرز بازی با تئاتر کابوکی که از سنت‌های ملی ژاپن است، بسیاری جنبه‌های مشترک دارد. پدرم نیز به نوبه خود نخواستیم بار که این نو را دید عاشق نحوه و طرز بازی تئاتر کابوکی شد. تکیه اصلی این تئاتر روی پانتومیم است او بلت دیگری هم ژاپنی ها را دوست داشت آنها از ته دل کمال طلب هستند و کمال طلبی هم در اعماغ روح پدرم نفوذ دارد او ممکن نیست با کارکنان ناشی و ناکارآمد آبش به یک جوی برود اگرچه همه کارهای خانه را به دست مستخدمین گذاشته بود اما خود پدرم فرمان روای بیچون و چرای خانه بود. در رأس مستخدمین فرانک بود که به عنوان مباشر و پیشکار انجام وظیفه می کرد. این مرد چهارشانه که قیافه صدیق و آشنا داشت در اداره خانه باری به دوش می کشید که از عهده دیگری ساخته نبود و در این کار معجزه میکرد. علاوه بر محاسن دیگر انگلیسی را به روانی ولی با لحجه قشنگ حرف میزد. او همیشه مهربان و دوست داشتنی بود و من و سیدنی به زودی مانند برادری با او گرم گرفتیم. کی که راننده بود نمونه کامل ژاپنی بود. صورتش یک نواخت و بدون تغییر بود و راه رفتنش خوشگو و تقریبا مانند راه رفتن نظامیان بود. آدابدانی او که با حرکات رسمی و خشک نشان داده میشد، یونیفرم سیاه و کلاه رانندگیش تقریبا تقریباً او را مانند مانکن مینمایند. من به یاد نمی آورم که کی را بدون یونیفرم و آن قیافه بی تأخیر دیده باشم، به‌جز یکی دو بار موقعی که در قسمت مستخدمین و دور از پدرم بود و لبخندی به شهرش نخش نقش میبست. کی انگلیسی بلد بود، اما روان حرف نمیزد. اصلاً او به اندازه فرانک حرف نمی‌زد. او پرکار و زحمتکش و کارآمد و منظم بود. گمان می کنم اگر هم خواب میدید خوابش منظم و مرتب بود. جورج آشپز تقریبا آشنایی به زبان انگلیسی نداشت و فقط جملات پاری به انگلیسی می گفت. اما در عالم آشپزی ذوق شاعرانه داشت. هیچ خوراکی از هر نوع مال هر ملیت نبود که او بهتر از هر کسی در شهر نتواند آن را بپزد او مردی کوچک و لاغر بود در حدود پنجاه سال داشت همانطور که هرگز کی را بدون انیفرم ندیدم جورج را هم به یاد ندارم که بدون پیشبند سفید و کلاه آش دیده باشم حتی روزهای تعطیل هم پیشبند میبست گمان میکنم که حتی در خیابان هم با پیشبند راه میرفت هر کی سخت و خشک بود جورج با روح و سرزنده بود همیشه به نظر می آمد که به کاری مشغول است حتی وقتی نشسته بود مشغول کار به نظر می رسید. خطوط چهره او چنان می نبود و چشمانش چنان می درخشید که گویی به یک شوخی در درون خود می خندد و غیافش شبیه کندکاری های بود و همین پدرم را مجذوب به او می کرد. من و سیدنی مستخدمین را از همان اول شناختیم. شاید به این علت که ما مانند بیگانگانی بودیم که هنوز جایی برای خود باز نکرده بودیم. مثلا وقتی پدرم در بیرون از خانه غذا میخورد معلوم نبود ما باید کجا غذا بخوریم. به جهت از ما می‌خواستند که اگر ممکن است با مستخدمین غذا بخوریم. البته این کمال میل ما بود. در اتاق نارخوری راحتانها، گاهی خیشاوندانشان هم جمع می شدند و مجلس قضا شادمانه میشد و هم همه چیز برای ما تازگی داشت. ما غذاهای عجیب و غریب ژاپنی را با چوبهای مخصوص طبق آموزش فرانک می‌خوردیم. هیچ وقت هم به فکر این نمی‌افتادیم که ما رفتار و طرز غذا خوردنمان باشیم. اما در اوایل فقط موقع غذا خوردن نبود که ما با مستخدمین بودیم. من و سیدنی پیش از آنکه دوستان و علائقی در خارج پیدا کنیم، اغلب اوقات روز را دوروبر مستخدمین میپلکیدیم و به این ترتیب به جریان امور آشنا می شدیم. صبح پیش از آنکه پدرم بیدار شود، همه چیز آرام بود. مستخدمین آرام به کار خود مشغول بودند. کی در گاراژ آن طرف خانه سر ماشین ور می رفت. جورج در آشپزخانه خودش این وران ور می فرانک خانه را تمیز می کرد و به اساسی خانه رسیدگی می کرد. رسیدگی به همه اساسیه از لوازم آشپزخانه و ملافع ها گرفته تا لباس های گنجی پدرم، جورابها، ها، و حتی کفش ها به احده او بود. پدرم خودش نمی توانست به این کار برسد. گاهی پیش از ساعت یازده فرانک به حمام پدرم می رفت و ریش ریشتراشی او را مرتب می کرد. این وسایل بایستی با نظم مخصوص چیده می شد. به طوری که پدرم وقتی از خواب برمی خواست به توانت به سرعت به حمام برود. لوله خمیریش ریش و فرچ و تیغ را پیدا کند و در حداقل زمان این کار کسر را به پایان برساند. زمان پدرم همیشه چنان رفتار می کرد که گویی وقت و زمان جواهری گرانبه ساعت یازده چنان احساس آمادگی در آشباز ایجاد می شد که در میان سربازان شب قبل از یک حمله بزرگ احساس می شود. جورج صبحانه پدرم را حاضر می کرد و با نگرانی از آن مراقبت می نمود. گاهی دیرتر گاهی زودتر زنگ به صدا در می آمد. کی وقت صدا کردن زنگ را نمی‌دانست ولی وقت صدا می‌کرد همه به کار می‌افتادند هیچ کس نمی‌توانست اوندار از این ها در این موقع کار کند جورج دستهایش را بالای سر می‌برد و می‌گفت او کوچولو پدرت زنگ می‌زند از این شیست خیلی خوشش می‌آمد بعد مجهز با کفگیر و قاشق و ملاقه صبحانه را به هم می‌زد و در باشخواب می‌ریخت من مجزوب سرعت عمل او می شدم و به طرز سرخ کردن شاهماهی، جوشاندن شیر و تایه میگو خیره می شدم. آخر صبحانه پدرم هم مانند نهار او به سبک انگلیسی بود. گاهی اوقات جورج غذایی از گوشت خوک و سیب زمینی درست می کرد. گاهی گوشت خوک و قلب گوستوند را با هم سرخ می نمود. اما صبحانه مورد علاقه پدرم شیر و سوسیس و مارمالاد و نان برشته شده و تخم مرغ بود. به محض آنکه سینی صبحانه آماده میشد، فرانک که از روی شانه جورج به او نگاه میکرد، آن را قاپ میزد و میبرد. بعد با خنده دوستانه‌ای به من میگفت: بیا کوچولو، پدرت بیدار شده. به او صبح بخیر بگو. من و فرانک همراه سینی به اتاق خواب پدرم پرواز می کردیم. در آن روزها معمولا صبحانه را در آن اتاق می خورد. پدرم که با پیژاما منتظر ما بود، با لبخند مهربانی به من خوش آمد می گفت. پدرت دیشب را بد و نراحت گذرند. در این مواقع هم می دیدم که او از خودش به عنوان سوم شخص حرف می زند. مثل اینکه دو شخصیت جداگانه دارد. یکیان آن که دارد حرف میزند و دیگری شخصیت واقعی او که بازی می کند و تحسین میشنود، یعنی شخصیت ویلگرد کوچولو. بعضی وقتها که جورج غذای تازه درست می کرد دلش میخواست خودش آن را برای پدرم ببرد که عکسال عمل او را به غذای تازه بفهمد. در این موقع من هم به دنبال او میرفتم. جورج سینی را کنار تخت پدرم میگذاشته می, گذاشت و می گفت غذاای تازه است آن را بچشید، خوشتان خواهد آمد. بعد پدرم تکه از غذا را میخورد. طرز غذا خوردن او مرا به اشتها می آورد. حتی من هر وقت صحنه از جویندگان طلا را که در آن پدرم لنگ کفش کنه ای را می میبینم، اشتهایم تحریک می شود. او کارت را به سبک انگلیسی می گیرد و گوشت را با ظرافت می بارد و در این موقع خیافش حالتی پر پرمه را مجذوب میگیرد. به دقت لغمه را به دهان می‌برد و آهسته می جفید. گویی که لغمه غذا با ارزشترین چیزهای جهان است. اگر همین حالت بر چهره پدرم نمیدار میشد جرج جورج از خوشحالی دستهایش را بالا می برد و صورتش از شادی می درخشید و میگفت: آه oh, خوشتان آمد خوشتان آمد خدا را شکر. هیچ هنرمندی به اندازه جورج در این موارد از نخستین کار خود اینقدر خوشحال نمی شود. پس از آنکه صبحانه پدرم را می‌بردند، دوباره آرامش بر خانه حکم فرمان میشد. زیرا پدرم در اتاق به کار خود می پرداخت. فرانک کمتر به سراخ او میرفت. رفت. یک بار وقتی تازه به این خانه آمده بود که برای پدرم کار کند، اشتباهاً به اتاق او رفته و ورود مهمانی را اعلام کرده بود. پدرم سرش را رو از روی کاغذ های زرد خددار چلویش بلند کرد و ناگهان گفته بود مرد شورش ببرد نمیخواهم او را ببینم به او بگو در منزل نیستم و سپس دوباره به کار نوشتن خود پرداخته بود فرانک چطور میتوانست بعد از آنکه به مهمان گفته است اربابش در خانه است دوباره بگوید ارباب خانه نیست فرانک به سرعت یاد گرفت که جلوی مهمانان را بگیرد و به انتخاب خودش آنها را که میدانست پدرم ماگل به دیدن آنهاست اجازه ورود بدهد. تعداد اینگونه مهمانان خیلی کم بود. به بقیه فرانک سرحتتا دروغ می گفت. زیرا این روش آسانترین و مودبان ترین طرز راه ندادن آنها بود. وصلع تلفن هم همینطور بود. پدرم در برابر تلفن از جا در می رفت. حتی می توانست آن را ببیند یا به وسطیلی آن صحبت کند یا صدای زنگ آن را بشنود. به شریدن صدای زنگ تلفن از کور در می رفت و می گفت. آن کار خلی که این چیز لنتی را اخترا کرد. چه افتضاحی خفش کنید، خفش کنید. پدرم با تمام آتش این مزاجی روح محافظ کارانش به تلفن فاش می دهد. اما سرمایه گذاری عمره او در شرکت تلفن است. وقتی پدرم در خانه نهار میخورد، فرانک با ژاکت و کراوات سر میز می‌ ایستاد و دو خدمت می‌کرد. متصدی مهمانی‌های بزرگ هم فرانک بود و اگر لازم میشد به عنوان گارسون هم کار می‌کرد. اما فعالیت او به همین جا محدود نبود. او مسئول قرار ملاقات‌های پدرم بود و هر روز صبح به اتاق او می‌رفت و برنامه کارهای روزش را به پدرم می‌گفت. وقتی پدرم به خارج از شهر سفر می‌کرد، فرای همراه او می‌رفت و دست راست او بود. او همچنین مراقب سلامتی پدرم بود. زیرا اگر این کار را به خود پدرم واگذار می‌کردند، از اثر آن قفلت می‌کرد. مواقعی که پدرم مریض می‌شد، گاهی درد معده یا سرماخوردگی داشت و پزشک ماست مینوشت، فرانک نه فقط دارو را تهیه می‌کرد، بلکه مراقب پدرم بود تا در موقع لازم دارو را بخورد. فرانک یکی از افراد معدودی بود که می‌دانستند چگونه به پدرم بگویند چه بکند و چه نکند که خوشایند او باشد. فرانک البته متصدی مستخدمین بود و می آنها را به خدمت بگیرد و یا از خدمت اخراج کند. چون گرچه پدرم همیشه از بیکفایتی متنفر بوده است همچنین از اینکه شخصا کسی که او را آزارده از ترد کند نفرت دارد. پدرم کمتر به فرانک سریحن می گفت که فلان کس باید از خدمت اخراج شود. این جریان یک نوبازی و سرگرمی بین آن بود. پدرم به شکایت می‌کرد. قضا بدنسه است و فرانک میدانست که آشپز جدیدی باید بیاورد اما هم همینکه که جورج را پیدا کرد دیگر لازم نشد به دنبال آشپزی بگردد همچنین لازم نبود به دنبال راننده بگردد زیرا از رانندگی کی راضی بودند کی هر دو اتومبیل را اداره می کرد. یکی کادیلاک سیاه رنگ و دیگری فرد جدید را که پدرم برای استفاده شخصی خریده بود و زیبایی مانند یک اثر هنری بود او آنها را پیاده می کرد، جلال می داد و هر قطعه ای آن را تمیز می نمود و دوباره سر جایش می گذاشت. من و سیدنی مجذوب اعمال او وی را نگاه می کردیم، اما ما نمی توانستیم کی را خیلی به حرف بیاوریم. موقعی که از او میپرسیدیم چه میکند کند، شکست بسته می گفت آه من باید اتومبیل را برای آقای چاپرین حاضر کنم، این باید برای پدرتون خیلی کامل بشود. به نظر من چانید میآمد که کی همیشه مشغول تمیز کردن و برق اتومبیل کادیلاک است. وقتی اتومبیل را جلوی در خانه میبرد که پدرم را سوار کند، یک راب زود میآمد و در این مدت با به جان اتومبیل میافتاد و چنانکه گویی زندگی او به این کار وابسته است، مشغول تمیز کردن اتومبیل میشد. او به ما میگفت: "باید بدرخشد، باید بدرخشد." پدرتان اتومبیل مشکی برراغ را دوست دارد. رانندگی کی نیز ماننده منقابت اتومبیل قابل اعتماد بود. پدرم به قدرت و توانایی راننده خود ایمان داشت و می دانست هر قطر هم عجله داشته باشد سر وقت او را به قرارهاش خواهد رساند. اما بعضی اوقات احساس می کرد که کی حد اکثر کوشش خود را نمی کند. در این موقع با اصابانیت و نگرانی می پرسید؟ کی؟ چرا ایستادی؟ برو؟ برو؟ کی که بین احترام به ارباب و احترام به قانون گیر کرده بود با گله جواب میداد. آخر آقای چاپلین چرا قرمز است؟ اما اکثر اوقات کی ترتیبه به کار می برد که پیوسته ماشین را براند تا پدرم از او خوشش بیاید؟ من هنوز به روشنی به خاطر دارم که یک روز بدونان که لحظه توقف کند، اتومبیل را از بَورلی هیل به ویلمینگتون برد. من هنوز هم از این ماجرا خنده میگیرد. پدرم و تیم دورانس میخواستند برای قایق سواری به کاتالینا بروند. هر دو توی ماشین نشسته بودند که ناگهان پدرم به یاد راکت تنیس خود افتاد. او بدون راکت تنیس جایی نمی رفت. از این جهت کی را به خانه فرستاد تا راکت را بیاورد. بعد از رفتن کی پدرم ناگهان به یاد آورد؟ نه گمان می‌کنم راکت در طبقه بالا است پدرم از اتومبیل بیرون پرید تیم همه دنبال او بیرون آمد و هر دو در جستجوی راکت به سوی خانه دویدند وقتی آن را در طبقه بالا نیافتند، پایین برگشتند که ببینند آیا کی راکت را پیدا کرده است یا نه؟ اما اتومبیل رفته بود کی راکت را در زمین تنیس پیدا کرده بود با عجله برگشته آن را در داخل اتومبیل گذاشته و توی آن نشسته و اتومبیل را راه انداخته بود بدون آنکه نظری به عقب بیندازد. پدرم به اتفاق تیم نشستند و منتظر شدند آنها مطمئن بودند که کی در عرض چند دقیقه متوجه خواهد شد که مسافری ندارد و به سراغ آنها خواهد آمد اما زمان میگذشت و خبری از کی نبود. او تمام راه را تا ویلمینگتون که در حدود 25 کیلومتر بود به سرعت راند. با سرعت سرسام‌آوری از میان وسائط نقلیه دیگر پیچید و میگذشت. نامیدانه کوشش می‌کرد وقت تلف شده را جبران کند. او نه تنها این کارها را کرد، بلکه اتومبیل را جلوی اسکنه نگه داشت. از آن بیرون پرید و پیروزمندانه در عقب را باز کرد. دیواندرسون ناخدای کشتی تفریحی پدرم به نام پاناس آ در آنجا بود و هم او بود که فریاد کشیدن دیوانوار کی را برای ما نقل کرد. کی با استراب فریاد میزد آقای چاپلین، آقای چاپلین آقای چاپلین را دزدیدند؟ فداکاری صمیاممی که این سه نفر ژاپنی نسبت به پدرم چیزی بود که هیچ فرد غربی از آن سر در نمی آورد. آنها هر خواهش او را اگرچه به قیمت ناراحتی فراوان خودشان تمام می‌شد، برآورده می‌کردند. وقتی پدرم از جورج خواست که در پناه‌سال به عنوان آشپز کار کند، او حتی فکر اعتراض هم به مخزه خود راه نداد. در حالی که او در دریا حالش به هم می‌خورد و همینطور هم شد. به محض اینکه کشتی به حرکت درآمد، بیماری شدید و درمان ناپذیر دریا به جورج آرس شد. جورج نالهکنان میگفت دریا را دوست ندارم اقیانوس را دوست ندارم اما همیشه جورج در روی کشتی دیده میشد اغلب روی نرده ها تکیه می کرد و وانمود می ساخت که دارد دریا و آسمان را تماشا می کند زیرو از بیماری خود شرم زده بود و نمی خواست دیگران چیزی درباره آن بدانند فرانک را هم که مبتلا به مرض دریا گرفتگی بود از شکنجه که رفتن به کشتی معاف کردند زیرا به وجود او احتیاجی نبود و جایی هم نداشت که در کشتی بماند اما او هم شادمانه هر فداکاری را که از او می‌خواستند میکرد مثلا در یک زمستان همراه پدرم به نیویورک رفت که یاد آن در خاطر ما مانده است آنها به هتل والدروف آستوریا رفتند و در یکی از طبقات بالای آن سکونت کردند این آپارتمان به نظر فرانک جای راحتی آمد، زیرا هواگ بیرون بسیار برفی و سرد و برودت زیر صفر بود. اما پدرم همین که وارد اتاق که گرمای مطبوعی داشت شد، نگاهی به رادیاتور حرارت مرکزی انداخت و نفس کوتاهی کشید و سرش را تکان داد و گفت، این فایدهی ندارد، فورنز شیر گاز را ببند. البته حرارت مرکزی با بخار آب بود، اما همه رادیاتورها به نظر پدرم با گاز کار می کنند و معتقد است که بوی گاز سرش را درد می آورد. فرانک بیان که کلمهی بر زبان براند به همه اتاق ها رفت و رادیاتورها را بست. و خودش هم می دانست که نتیجه این کار چه خواهد بود. گرمای اتاق به سرعت پایین آمد و به صفر رسید. پدرم که با وجود عقیده اش حرارت گاز خیلی هم به سرما حساس است، به رخت خواب رفت و مقدار زیادی پتو و رو به رویش انداخت. فرانک با پالتایش لرزان در اتاق نشیمن نشست. بالاخره او هم که دی دیگر نمیتواند سرما بخورد به اتاق خودش رفت در را بست و با احساس اینکه گناهی بزرگ می کند، گاهگاهی شیر بخار رادیاتور اتاق خودش را باز می کرد و می بست. او چه در آن موقع و چه بعدان درباره این سفر سرد به نیویورک چیزی نگفت و شکایتی نکرد تنها چیزی که در این ماجرا را آن بود که اما پدرتان سر درد نگرفت از این موضوع مطمئنم بزرگترین لذت فرانگ در این بود که در هر کاری پیش قدم پدرم باشد آنقدر خود را وقت آسایش پدرم کرده بود که گویی با الهام را که مربوط به پدرم بود درک می کرد. از روی قریزه می فهمید که کی پدرم سردمه است و کی اوقاتش تلخ کی و عصبانی است و در تمام این موارد با پدرم همدردی دردی می کرد پدرم هر وقت اشکال و درد سری برایش ایجاد می شد حل و فصل بسیاری از آنها را به دوش فرانک میانداخت. بسیاری از اوقات خشم و عصبانیت غیر منطقی خود را موقعی که کاری خوب انجام نمیشد و او میخواست به یک نفر توپ و تشر بزند بر سر فرانک میریخت. پدرم بر سر کوچک‌ترین فراموشی فرانک از جا در می رفت. میزان خشم فراوان او آنقدر با علت کوچک ایجاد این خشم نامناسب بود که من در آن اوایل سخت میترسیدم. به همین جهت خونسردی و آرامش فرانک برای من حیرت آور بود. مثلا اگر وسایل ریش پدرم سر جای همیشگی خود نبود، او به فرانک تشر میزد. وقتی راکت تنیس را که خودش جای دیگری گذاشته بود گیر نمیآورد باز هم بار ملامت به دوش فرانک می‌افتاد. چیزهای کوچک مثلا جابجا جا شدن مدادی که او آن را شب پیش در جای گذاشته بود، او را تحریک می کرد. حتی اگر اشخاصی که با او وعده ملاقات داشتن پیدایشان نمیشد، باز هم فرانک مقصر این خلف وعده شناخته میشد. اما پدرم در اوج خشم و عصبانیت ناگهان به خود می آمد و با مذرت خواهی می گفت، فرانک، معذرت می خواهم. قصد نداشتم اینطور بلند حرف بزنم. یک کمی از جا در رفته بودم. اگرچه کمتر این عوض را جلوی دیگران می کرد؟ من یکی از این جنجالها را که نمونه بود به یاد میآورم. شبیه فرانک لباس مخصوصی را که او میخواست بپوشد برایش نگستشته بود. اغلب اوقات تلخی پدرم بر سر فرانک از این جهت بود که فرانک نمی درست افکار و تصمیم او را بخواند. پدرم بعد عادت شده بود و خیال میکرد طبیعی آن است که فرانک افکار او را به خودی خود دریابد و مراقب اجرای آنها باشد. همان شب سر فرانک داد زد. فرانک، سهل انگار شده ای. چرا گوش به حرفهای من نمی و دستورهای مرا را نمی یادت باشد که من به تو حقوق میدهم. پدرم هر وقت به راستی از مستخدمین سختمین عصوای میشد نمی از تذکار اینکه حقوق به آنها می خودداری کند. فرانک نه فقط حرفی نزد بلکه حتی به یاد پدرم نیاورد که دستوری درباره لباس نداده است. علاوه بر این فرانک واقعا خود را مقصر میدانست که نتوانست است افکار پدرم را بخواند از اتاق بیرون آمد و وارد سرسرا شد و مرا که سرگشت و دلخور آنجا ایستاده بودم دید لبخندی زد و گفت پدرت گاهگاهی دیوانه میشود اما آدم خوبی است کار کردن برایش خوب است یک چیز توی کلش است خیلی چیزها است به این جهت دیوانه میشود اما همیشه یوقات اینطوری نیست. زود از دستش خلاص می شود و یک دقیقه ی بعد خوش خورم است. حالا که من به گذشته مینگرم درست نمیدانم که آیا پدرم مستخدمین را به عنوان افرادی با حقوق بشری در نظر میگرفت یا نه. گمان میکنم که نمی‌گرفت. آنها به وی نزدی از آن بودند که چاره نظری در باری آنها داشته باشد. مانند قلب، کبد و تحال چنان برایش ضروری بودند که جزئی از او شده بودند او همانقدر که اعضای بدن خود را لازم داشت به آن هم میاسمند بود بیچون و چرا حتی بدون تفکر آگاهانه به آنها اعتماد میکرد. مستخدمین از بعضی جهات به او حتی از من که فرزندش هستم نزدیکتر بودند